بسم الله الرحمن الرحيم رسدين ببحث بحث الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب میفرمایند امر استدعاء کردن طلب کردن فعل به قول اشاره خارج میشه به قول ممن هو دونه طلب کردن فعل با قول از شخصی که پایین از خودش هست یعنی پایین از طالب هست علا سبیل الوجوب به شکل وجوبی به شکل الزامی اینو بهش میگن امر طلب کردن فعل با قول نبا اشاره از کسی که پایین از خودش هست چون اگر در سطح خودش باشه بهش میگن التماس اگر بالاتر از خودش باشه کسی رو طلب بکنه بیش میگن دعا یعنی ما اگر از بگیم پروردگار این چیز رو به من بده دیگه بهش نمیگن امر، بهش میگن دعا چون بالاتر از ماست پس امر طلب کردن فعل با قول از کسی که پایین از طلب کننده هست علا سبیل الوجوب به شکل وجوب مستحب از این خارج شد وصیغت و دالت علیه افعل سیغهی که دلالت بر امر میکنه افعل هست سیغهی که دلالت بر امر میکنه افعل هست منظور امر به سیغه افعل افعلا افعلو افعلی افعلی افعل نفرقی ندارن همه اینا یا امری که با لام درست میشه لیا لینصر لینصرا لینصرو لیاسمت. و یا های دیگه ای که در ادبیات عرب دلالت بر طلب میکنند. مانند که، ان الله یأمر بالعدل بالعدل دستور میده. یا لفظ فرض، یا لفظ واجب، یا کتبه، کتبه عليكم السلام. فرد الرسول صلی الله علیه و سلم زکات الفطر فی رمضان. یا این که امری در شریعت توصیف بشه که این اطاعته انجام دهنده این کار سواب گیرش میاد اگر کسی این کار رو انجام نده گناهکار میشه این هم دلالت بر این میکنه که پس این امر واجبه که فقط مولف افعالش رو آورده هست ما افعال مال مجرده مال مزیده همون و رازن افعال نیست مثلا امره فائل یو میشه فائل منظور تمام سیغاهی که دلالت بار امن کنن و هی اندال اطلاقی و تجردی ان القرینه تحملو عليه و میگه این امر هنگام مطلق بکار رفتن این کارو بکن و تجرد ان القرینه و نداشتن قرينه تحمل عليه حمل بر وجوب میشه امر هنگامی که مطلق به کار بره قرینهی نداشته باشه دلالت بر وجوب میکنه الا ما دل الدليل على ان المراد منه ند ما که دلیلی دلالت کند که منظور از امر اینجا مستحب هست مانند این که و اذا حللت فستادو زمانی که از احرام در اومدید پس چکار کنید خب اینجا فستادو فعل امر ولی دلالت بر وجوب نمیکنه دلالت بر مستحب میکنه چرا قری داریم چون این بعد از این امر بعد از حرمت اومده یعنی شکار در حالت احرام حرام هست میگه زمانی که از احرام در اومده شکار بکنید خب اینجا واجب نیست شکار میخواد بگه که اون حرمت دیگه الان پایان یافت پس و میفرماید إلا ما دل الدليل على أن المراد منه أو النود أو الإباحة يا إباحة البتين مثالي من زدم ما لإباحة بود إذا حللتم فاستادوا نود بشهم مثالي كمي زادن مانند سلو قبل المغرب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ فرمود دستور داد سلو فعل امره سلی سلا سلو, سلو بعدش در آخر گفت لمنشا قرینه آورد برای کسی که بخواد لیزم میگیم اینجا سلو دلالت بر مندوب بر مستحب میکنه فیحملو علیه پس حمل میشه بر همون مستحب یا مندوب که قرینه چی میگه پس میفرماید امر هنگام مطلق بودن و خالی بودن از قرینه حمله بر وجوب میشه مگر زمانی که دلیلی دلالت بر این کند که منظور از این امر اینجا مستحب هست یا مباح بودن هست که در این صورت حمله بر مستحب یا مباحبودن میکنه خب این شد از امر ولا لا تکرار تکراره على صحیح مسئله دیگر بیان میکنه میگه امر اقتضای تکرار نمیکنه موقع گفتن این بخور معنیش این نیست که همیشه بخور به شکل تکراری یعنی اگر یه بار هم خوردی کافیست ولا یقت از تکرار علی صحیح اقتضای تکرار نمی کند بر اساس قول صحیح از این کلمه مشخص میشی که اینجا دو نظریه وجود داره البته زمانی که مطلق به کار برش دستور اگر ما دستوری در شریعت داشته باشیم که قید اومده باشد که شما همیشه این کار رو بکنید خب اون موقع دلالت بر تکرار میکنه. یا قید داشته باشه که شما یه بار اینو انجام بدید که این دلالت بر همون قیدش میکنه. ولی زمانی که مطلاق باشه شما امر اومده که این کار رو بکنید. آیا دلالت بر تکرار میکنه یا نه؟ ولای اقتضای تکرار علی صحیح میگه امر اقتضای تکرار نمیکند بر اساس قول صحیح. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار مگر زماني كالدليل دلالت كنت كإنكار تكرار بشي إني يك مربوط كمربوط امر ولا يقتزي الفور وإقتزاي فوريات هم ميجي مؤلف ميجي إقتزاي فورياتو نميكنت إنجا هم أگر ميگفت على الصحيح بنازد خودش البته كأون يعني بهتر بود چون اینجا هم اختلاف وجود داره بعضی میگن فوریت فوریتو میرسونه به محض این که دادن فوری باید اجرا بشه. مثلا اگر کسی کارگرش یا زیر دستش رو گفت این کار بکن فورا انجام بگیره خب و گروه میگن فوریتو نمیرساند ولا یقتزل فورا نویسنده بر همین هست که فوریت رو نمیرسوند. البته این زمان مطلق بودنش هست. زمانی که تعیین نکنند. اگر امر اومد که الان انجام بشه موقع فوریت او میرسونه. اگر امر شد که یک سال بعد اون موقع یک سال بعدم میرسونه. ولی زمانی که مطلق باشه اختلافی هست که نویسنده حمهد الله میفرمایند که فوریت رو نمی رساند که این هم قول گروه زیادی از فقها و دانشمندان اسلامی است از میان مذاهب مختلف و قول دوم میگه که فوریتو میرسوند قسمتی از علمای مذاهب باز هم نظریه دومو دارن که فوریتو میرسوند و یک سری آیاتی که در قرآن و احادیث وجود دارد و ادله پشتشون هست و این قول که فوریت و میرسوند ظاهرا قوی تر هست و ادامه بحث و الامرو بی ایجاد الفعالی امرون بهی امر کردن به ایجاد فعلی امر به اون چیز هست این یعنی موقعی که امر شدیم که یک کاری به وسیله چیزی انجام بگیره، این امر شامل وسیله هم میشه و امر کردن به ایجاد فعل امر به اون وسیله هم میشه و به ما لا یتم الفعل الا به و امر میشه به هر آن چیزی که فعل انجام نمیگیره مگر به وسیلهش که قاعده در این مورد وجود داره ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب هر آن چیزی که انجام نگیرد واجب مگر به وسیله آن چیز ان وسیله هم واجب است مانند نماز که بدون وزو انجام نمیگیره. پس وزو هم مثل حکم نماز رو داره وسیله ها حکم مقاصد رو دارند اگر مقصد من مستحب بود وسیله مستحبه اگر مقصد واجب بود وسیله هم مستحبه و اذا فعل و زمانی که انجام گرفت اون امر خرج عن الاوذه از عهده خارج میشه زمانی که نافذ شد زمانی که انجام گرفت دیگه از عهده مکلف خارج میشه براءت ذمه میشه ادامه بحث ایت خلوفی خطاب الله تعالی المؤمنون در خطاب الله متعال مؤمنون شامل داخل میشاند در خطاب تکلیفی الله متعال مؤمنون وارد هستند. والصاهی والصبی والمجنون غیر داخلین فی الخطاب شخصی که در صحف هست فراموش هست در غفلت حواس نداره در اشتباهه این در خطاب شامل نیست وصبی بچه و المجنون دیوانه اینا در خطاب وارد نیستند البته درون ل... مثلا شخص صاحی درون لحظه ای که در غفلت و در فراموشیه در خطاب وارد نیست مثلا تشهد اولو فراموش میکنه خب این دیگه در خطاب شامل نمیشه که تشهدی بخون چون ذهنش اونجا نیست ولی بعدن که ذهنش اومد باید دیگه سجده صحبو انجام بده یا مجنون به هنگام دیوانگیش والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الاسلام وكفار مخاطب هستند بفروع دین شریعت جایی که دین میگه شما نماز بخوانید کفر هم میگه البته این قول اختلافی هست که آیا کفار مورد خطاب در فروعات هستند یا نه گروه میگن نیستند و گروه میگن هستن که نظر نویسنده بر همین هست که کفار مخاطب هستند به فروعات شریعت یعنی به اوامر و نواهی و به احکامات عملی اسلام و به مالات صح و الا به و به اون چیزی که فروعات صحیح نیستند مگر به وسیله آن به اون چیز خطاب هستند و هو الاسلام که اسلام هست یعنی نماز قبول نمیشه تا انسانی اسلامو نپذیره روزه قبول نمیشه تا کسی اسلام نپذیره میگه کفار مخاطبا به نماز و روزه و به اون چیزی که نماز و روزه قبول نمیشن مگر با پذیرفتنش که اسلام باشد پس معنی روان جمله این هست که کفار مخاطبان هم به فروعات دین و هم به اسلام آوردن لقوله تعالی به دلیل قول الله متعال قالو لم نکو من المصلين. موقعی که میپرسه چرا شما وارده جهنم شدید گفتند ما از نمازگزارن نبودن نبودیم گفتند نبودیم از نمازگزارن یعنی دلیلشو فروات ذکر کردند احکام عملی ذکر کردند که ایمین قول راجح هست والامر الامر به نهیو زده. از زدهی، امر کردن به یک چیز نهی از زد اون هست. بسم الله که میگن برو، این امر بر رفتن هست. زد رفتن نرفتنه، نهی از نرفتنه. امر کردن به چیزی نهی از زد اون چیزی. ول امر رو به زده امر کردن به چیز نهی از زد اون چیز هست. و نهیو از شی و نه کردن از یک چیزی امرون بزدهی امر بزده اون چیز هست موقعی که نه میکنه از رفتن آن نرو پس امری برای رفتن هست و نه یو انشه امرون بزده نح کردن از چيز. یک چیز که این چیزو نکن حرکت نکن حرکت نکن امر به زدش هست که سکون هست یعنی سکون داشته باش نرو زدش استادنه یعنی بیست پس و نهی شی امرون به زده نهی از چیزی امره به زده آن هست امر خوندیم و مسائلش رو انشاءالله درس بعدی که نه باشد را با هم خواهیم خوان موفق و پیروز باشید